أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله مولانا سوره مباركه و این هم سوره مکی هست نظر ترتیب هفتاد و ششومین سوره هست که <تصفح> بر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل شد موضوع این سوره هم قیامت هست و اثبات قیامت و عذاب در قیامت در سوره مبارکه زاریات خواندیم رفت را عرض می کنم در سوره مبارکه زاریات ان اندین لواقع جزا واقع می شه جزا کلمه مشترکی هست هم برای جزای بد اطلاق می شه هم جزای نیک اینجا علی سبیل ترقی الله تعالی بعد از چند مرحله تأکید و سوگند می فرماید ان عذاب ربک لواقعه یعنی جزای خاص را زک می فرماید عذاب پروردگار تو واقع میشه و هیچ کسی هیچ هستی هیچ ذاتی نمیتواند او را دفع کند جلوی اون عذاب را بگیرد در این سوره مبارکه همین ابتدا دو تا دلیل نقلی داریم یکی از موسی و یکی از کتب سابق و یک دلیل دلیل وحی هست و دو تا دلیل اقلی هست علاوه از این در این سوره علاوه از بحث قیامت تخویف و تبشیر هست و همچنین تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلام الله <تصفح> تعالی آغاز می فرماید با کلمه و یعنی طور و طور معنایش سوگند به یعنی تور را شاهد می گیرد الله تعالی شاهد گرفتن تور به چه معنا شیخ می فرماید شیخ حسین علی که شاهد گرفتن تور یعنی دلیل نقلی از موسی و از تورات چرا چون تور محلی هست که در اونجا موسی علیه و السلام با خداوند عزوجل هم کلام شد تور مکانی هست که در آنجا موسی علی السلام تورات را دریافت کرد لذا وقتی که گفته میشه تور اشاره به موسی هست به کتاب موسی هست به تعلیمات موسی که اون تعلیمات شاهد هست موسی شاهد هست بس این دلیل نقلی از موسی شد و کتاب مستور کتاب نوشته شده فی رق منشور در صفحی گشوده شده کتاب نوشته شده فی رق منشور در صفحه گشوده شده اصل رق میگویند پوست آهو که وقتی نازک باشد و روی او بنویسند رق او را میگویند اما مراد از کتاب نوشته شده چی هست بعضی میگویند که اشاره به انجیل هست کتاب نوشته شده مال عیسی که در برقی و در صفحه گشوده شده نوشته بعضی میگویند که مراد لوح محفوظ است اگر انجیل باشد یا بعضی های دیگر را گفتند اش دلیل نقلی از کتب سابقه میشه اگر لوح محفوظ باشه خب در لوح محفوظ هم تمام کتابها محفوظ هستند پس گویا معناش اینه که خداوند دلیل نقلی ذکر می‌فرمازد از کتب سابقه کتاب‌های گذشته‌ای که بر انبیا نازل شدند همه این ها هم شاهدند و کتاب مستور کتاب نوشته شده که در صفحه باز شده و گشوده شده این دو تا دلیل شد سوم والبیت المعمور قسم به بیت معمور بیت به معنای خانه معمور به معنای آباد خانه ای که آباد هست خانه ای که آباد هست با چی آباد هست؟ با عبادت آباد هست. این معنی لغویش هست. اما اصطلاحاً بیت معمور به بی چی میگویند؟ بیت معمور به محلی که محل تواف فرشتگان هست. این بیت معمور اونطوری که از روایتها معلوم میشه بر آسمان هفتم هست. بالای آسمان هفتم، اما موازیه بیت الله کاملا برابر بیت الله است اونجا بیت معمور است اینجا بیت الله است اینا هر دو تا در یک زاویه هستند در یک جهت هستند اینجا انسان ها می میکنند اونجا فرشتگان می میکنند و فرشتگان جمعیتشون در احادیث آمده کسانی که فرشتگانی که می میکنند إنه يزوره كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه بعدها هر روزي هفتاد هزار فرشده در بيت معمور تواف و زيارت بي کنند و بعد از آن ديگه تا قيامت نمی آين چون نوبت نمی رسد يعني جمعیت زياد هست پس هم از این روایت معلوم شد جمعیت فرشتگان که فوقالعاده زیاد هست و هم جایگاه بیت معمور رسول الله صلی عليه علیه وسلم در شب معراج که تشریف بردن در حدیث می آید من وقتی که به آسمان هفتم رفتم جد, جد بزرگم ابراهیم را دیدم که به بی بیت معمور و به بی دیوار بیت معمور تکیه داده بود. لذا بیت به اون مکان مقدس گفته میشه لذا وحی که بر آن حضرت آمده از اونجا آمده از لوح محفوظ و بیت معمر آمده ابتدا آن لذا شیخ میفرماید این اشاره به قرآن هست به دلیل وحی است یعنی این قرآن هم شاهد است این سه دلیل دو تا دلیل نقلی شد یک دلیل وحی شد و سقف المرفوع قسم به سقف بلند این سقف بلند آسمان هست که الله تعالی آسمان را بلند کرده و السماع بنیناها رفع سمکها سقفش را بلند کرد. بس این سقف مرفوع این دلیل اقلی هست یعنی همون طور که خدای عز قادر هست این آسمان درست کند آسمان را انسان مرده زنده کردنش برای الله آسان تر است. و این چارمین دلیل شد. اما این دلیل اقلیه است. پنجمی والبحر المسجور یا دومین دلیل اقلیه است. دریایی که پر آب است. این دریا خودش یکی از بزرگترین آثار قدرت الهی است. همونطور که آسمان از آثار بزرگ قدرت پروردگار است. این مخلوقات بزرگ قدرت فوق العاده خدا را اثبات می کند وقتی که قدرت اثبات بشه پس بر احیای مردگان هم قدرت دارد این پنج دلیل را الله ذکر می بعد از این پنج قسم این پنج پنجتا سوگند هستند. قسم به تور قسم به کتاب مستور که در رق منشور هست در برگی گشوده شده قسم به بی بیت معمور قسم به آسمان و سقف بلند قسم به دریای پر آب إن عذاب ربك لواقع إن جواب قسم است ومدعاية سورة است همانا عذاب پر وردگار عذاب ربك واقع ميش براي منكرين براي مشركين براي كفار عذاب واقع ميش اتفاق مي افتد بوقتش مي آياد ما له من دافع إن نفي شفاعت اگر كفار دل جرم هستن كي ما خداياني داريم ما معبودانی داریم که برای اونها گزفند کشتیم شطر کشتیم نظر و نیاز داریم نه هیچ کسی نمیتوند جلوی تصمیم خدا رو بگیرد ما له من دافع برای اون عذاب هیچ دفت کننده نیست هیچ کسی که بتواند جلو و دفت کند عذاب را نیست وجود ندارد اما این عذاب که واقع میشه تخویف اخروی الله تعالیٰ شمعی از احوال قیامت را بیان می در اون زمان عذاب واقع می شود روزی که آسمان بلرزه در می آید لرزشی تمور یعنی تز تریب تکان می خورد می لرزد ابتدا لرزه آسمان را می گیرد و بعدن پار پاره می شود اذا السماؤن شقت اذا السماؤن فطرت شکافته میشه پاره میشه تکه تکه میشه و تثیر الجبال و سیررا اون روزی که کوها حرکت میکنند سیر میکنند راه می افتن سیر کردنی یعنی کوها تبدیل بچی می شوندد کوها تبدیل به ریگ می و مثل آب روان روان می شوند فیل و حلاکت در آن روز برای تکذیب کنندگان تکذیب کنندگان چی عقاید حقه اونهایی که عقاید حق را تکذیب میکنند عقاید ایمانی را و درست را تکذیب میکنند در اون روز برای اونها و برای اونها حلاکت است این تکذیب کنندگان قیامت کیا هستند اینهایی که غرق دنیای خودشون هستند اینهایی که غرق خواهشات خودشون هستند هواي نفس خدشون هستن الذين هم في خوض يلعبون خوض مي گوينت فرو در مسألي انا در تي مسألي فرورفتن غرق شدن دنيا و لهو لعب دنيا متاوي دنيا الذين هم في خوض يلعبون در اون مسائل كفرو رفتن يلعبون یعنی مشغولند بازی می کنند یعنی مشغولند این افراد را روز قیامت صدا میزنند زنند این افراد ندا می شون یوم یدعون الی نار جهنم دعا روزی که فراخانده می شون. این افراد سوی آتش جهنم فراخاندنی یدعون فراخانده می شون. یعنی یدفعون الهی بعنف تفسیر جلالین گفته بازور با قهر به عنف برده می شوند یوم یدعون الى نار جهنم دعا روزی که حول داده می شوند بل برده می شوند بسوی آتش جهنم برده شدنی بل اجبار بردنی هاده نار اللتی کنتم بها تكذبون بیانان گفته می ای مجرمان این هست آتش آتشی که شما این آتش را تکذیب می کنید. الان جواب بدید افصحر هذا؟ ام انتم لا تبصرون آیا این جادو هست یا شما نمیدیدید؟ شما در دنیا می گفتید جادو قرآن نازل میشه شود می گفتید جادو الان جادو بود یا چشم شما کور بود و نمیدیدید. حال الله عز و جل می باید وارد این آتش بشید چه صبر کنید چه صبر نکنید چه تحمل کنید چه نکونید ها وارد آم بشید داخل آم بشوید فصبروا او لا تصبرو صبر کنید یا صبر نکنید سواء علیکم برابر است بر شما چه صبر میکنید چه نکنید چرا این عذاب چرا این آتش چرا این شکنجه انما تجزون ما کنتم تعملون خداوند میفرماید شما جزا میداد می شوید به کیفر اعمال می رسید کدام اعمال ما کنتم تعملون اون اعمال کفریه و شرکیه که شما در دنیا انجام میدادید اینها مکافات همون اعمال هست جزای همون اعمال هست این حال زار کفار و مشرکین خواهد بود منکرین قیامت کسانی که در دنیا قیامت را مسخره می کنند وقتی می قیامت می خندند اصلا انگار برای اونها یک داستان و یک افسانه می گیم اما اهل ایمان اهل تقوی چه حالی دارند ان المتقین باز هم بهش مالکیه متقیان است بشارت اخروی برای اهل تقوا ان المتقین فی جنات و نعیم همانا متقیان در باغات و نعمت های پروردگارند فاکهین بما آتاهم ربهم خوشحال و شادان فاکه به معنی اصل تفکک خوشگذرانی را منظور اینجا شادان خوشحال خوشحال و شادان بما آتاهم ربهم بسبب آنچه رب به آنها عطا کرده و وقاهم ربهم عذاب الجحیم وانها را حفاظت کرد ربشان از عذاب جهنم از عذاب جهنم نجات داده این خودش یک خوشی هست انسان نجات پیدا بکند از عذاب جهنم از این چه شادی بالاتر کلو و هنيئا بما کنتم تعملون تکریب مؤمنه ای مؤمنان ای بهشتی ها بخورید بنوشید خوشگوار بخورید یعنی راحت بما کنتم تعملون این اصحاب ظاهریه بسبب انچه که شما عمل می کردید بخورید متکئین علا سرور مسفوفه انها تکید آده اند بر تختهایی که به چیده کنار هم گذاشته و الله می فرماید و زوجناهم بحور عین و اون بهشتی را ما ازدواج میدهیم جفت میکنیم با حور عین حور در واقع هم به معنی سفیدی می آید یعنی بانوهایی که زیباییشون، سفیدیشون خیلی زیاد هست و بعضی میگن حور صفت چشم است. حور به اون زنهای گفته میشه که دارای چنان چشمایی هستن که سیاهی چشم در جای سیاهی و سفیدی چشم در سفیدی بسیار زیاد باشد یعنی هم وقتی که کسی سیاهیش خوب سیاه بشه و سفیدیش خوب سفید باشه یک نوع زیبایی خاصی دارد و این به اون چشمی گفته میشه که درشت باشد چشمه آحویی چشمای درشت بزرگ منظور نه که خدای عزوجل اونها را از نظر ظاهری بسیار زیبا آفریده اما وقتی که انسان بهشتی به بهشت میره در دنیا خانواده داشته در دنیا فرزند داشته در دنیا پدر و برادر داشته خیش و تبار داشته اگر اونها صلاحیت ورود به بهشت را داشته باشند یعنی ایماندار باشند اونها را هم الله عزوجل به بهشت میبرد به برکت ایمانشون اما اگر جائیگایشون جائیگای پایینی باشد انها را خدا تعالی در جائیگای این مقرب قرار میدهد، بغیر از این از جائیگای این چیزی کاسته بشه قبلا توضیح دادیم که مثلا این در جائیگای دهم است بقیه خیشاوندر در جائیگای دوم اند خب انها را پدر را برادر را امو را پسر امو را انهایی که اینا می خواهم با هم باشند اینها را میبرند به اون جایگاهه بلند قرار می دهند اورت چیزی پایین نمیارند این قرآن میفرماید والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بی ایمان. کسانی که ایمان داشته باشند مؤمن کامل باشند و تبعتهم ذریتهم بی ایمان، اما ذریه انها اولاد و احفاد انها، و بقیه خیشاوندان اونها دنبال کنند اونها را به ایمان در ایمان یعنی تابع و پیرو اینها باشند الحقنا بهم هم ذریه اونها را به اونها ملحق میکنیم به اونها میرسانیم و ما من عملهم من شيء و ما کم نمیکنیم از آنان از اعمالشان هیچ چیزی یعنی اون به اشتها او مقربین او امومین کامل چیزی از عملش کم نمیشه یعنی از درجهش، از جایگاش او پایینتر آورده نمیشه او همون جایش است. بقیه از را به اونجا میبریم، میرسانیم. این مال اهل بهشت است. اما مال اهل جهنم کل امپریم بما کسب رهین. هر انسانی به اونچی که کسب کرده گرفتار است. یعنی هر انسان مشرك به اونچه که کسب کرده در دنیا از اعمال شرک گرفتار است کل امر این کافرین بما عمل من الشرك مرتهن في النار و امددناهم بفاکهتی و یعنی اگر اگر اون خیشابند کافری باشد او خیشاوند غیر مسلمان باشد مشرکی باشد فرزند انسان باشد او به اعمال خودش گرفتاره اما اگر مؤمن باشد و به بهشت بره خب این را خدا به همون جایگاه میرساند و امددناهم به فاکهت و لحم دیگه برای بهشتی ها چی هست اللہ میفرماید ما اونها را عطا میکنیم میوه و لحم انواع گوشت من ما اشتهون از اون که دلشون بخواد اشتها بکنند میلش را داشته باشند یتنازعون فیها کعسا خداوند عز و جل در بهشت از خوشگزرانیشون میفرماید، فرماید دست به دست میکنه یتنازعون یعنی یتداولون فیها کعسا جام شرابی را این برای اون پرتاب میکنه اون برای این یا مزاح میکنن شوخی میکنن یا به هم دیگه تعارف میکنند لا لغم فیها ولا تأثیم نه لغوی هست در آن و نا گناهی اونجا هست یعنی چنین چیزی که کسی را ناراحت بکنند گناهکار بند. نه فقط خوشیه، فقط لذته، فقط خوشگذانی هست و علاوه از این برای اینها کسانی خدمت میکنن برای بهشتی ها. که بچه‌های نوعمری هستند بچه‌های کوچیکی هستند که زیبایی خاصی دارند و همیشه به همین سن می‌مانند و یطوف علیهم غلمان لهم دور می‌زنند بر آنها می‌گردند بر آنها پسرهایی پسر بچه‌هایی که برای آنها است لهم یعنی خاص برای خدمتشون است کأنهم لؤلؤ مکنون گویا اونها در زیبایی مثل مروارید پنهان هست مرواریدی که در غلاف مخفی شده هست چنان زیبا و چنان درخشندگی دارد یعنی هر, هر چیزی او قابل وصف حتی خادم او کسی که خدمت می کند هم مثل مروارید زیباست معمولاً انسان دوست دارد کسانی در خدمت او باشند که هم از نظر از نظر نظافت نظافت داشته باشند هم از نظر زیبایی به همین دلیل هست که بیشتر در هتلها در رستورانها در هواپیماها ها برای خدمت مهمانها و مسافر ها کسانی را اونجا انتخاب می کنند و کسانی را بکار می برند که اونها همه یک فرم داشته باشند یک لباس داشته باشند یک نو پوشش داشته باشند به ظاهر زیبا باشند تمیز باشند نظیف باشند همه این موارد را رایت می کنند اون وقت اون کسی که غذا می خورد اون کسی که مسافر هست راحت تر از همه چیز به او می چسبت. پس اونجا هم همچینی شرائطی از خدای تعالی کسانی را که به عنوان خدمت تعیین کرده این خدام چنان افرادی هستن چنان نوجوانانی هستن زیبارو که از نظر زیبایی مثل مروارید پنهان می درخشم چون مروارید وقتی ظاهر باشه همیشه روش غبار می شینه اما پنهان باشه هیچ غباری روی او قرار نمی گیره و بعد اینها این, این بهشت جسمانی بود این مسررت جسمی و مادی بود از نظر مادی کیف میکنند اما از نظر روحی و روحانی اهل بهشت چه مسرتی دارند چه شادمانی دارند با هم دیگه میشینند، گپ میزنند صحبت می و خوشحال هستند الله تعالی از خوشحالی اونها و شرایط روحی اونها بیان می فرماید و اقبل بعضهم على بعض يتسائلون روبرو میشه بعضی بر بعضی یعنی مواجه میشه بعضی از بعضی دیگه سوال میکنن در بار موضوعات مختلف با هم صحبت میکنن. قالوا اینا کننا قبل في فی اهلنا مشفقین من جمله اون صحبتها میگوین همانا ما قبل از این در دنیا در اهل و عیال میترسیدیم می ترسیدیم که ما بخشیده نشیم ما به جهنم برده بشیم این ترس بود این ترس خوبه این ترس مال مومن هست اما فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم الله بر ما منت گذاشت بر ما احسان کرد و ما را حفاظت کرد از عذاب سوزان سموم میگویند اون بعدی را که اون بعد مثل سم انسان را میکشد مهلک است ابادی در جهنم هست که جهنم و آتشش بجای خود اون سموم انسان را بیشتر ازیت میکند به خاطر اون کراهتی که دارد به خاطر اون تعفنی که دارد لذا الله ما را حفاظت کرد از عذاب جهنم اِنَّا كُنَّا من قبل ندعو ببینید علت اصلی اینجا سبب دوم هست اما یکی از اسباب دخول بهشت این ایمان انسان است انا کننا من قبل ندعو همانا بودی ما قبل از این در دنیا فقط اورا می خاندیم ندعوه لا ندعو غیره غیر خدا را ما صدا نمی زدیم ما خدا را صدا می زدیم انه هو البر الرحیم آگرین چی ذات کریمی هست اون ذات هو فقط او هست البر البر یعنی احسان کننده لطف کننده الرحیم مهربان چه لطف و مهربانی نسبت به ما او انایت فرموند خب تا اینجا ما خاندیم هم تخویف و هم تبشیر هم بخشی و شمی از عذاب جهنم بیان شد و نعمت های از نعمت های بهشت بیان شد حال اینجا هم تسلی برای رسول الله است و هم فریزه رسول. ای حبیب من، ای پیام دوست داشتنی من تو مردم را تذکر بده، معزه کن، یادآوری کن به تو هرچی میگوین بگویند خدا گواهی میده که اونطور که اونها میگوند تو نیستی فذکر، تذکر بده ہاتھ پہ دے نصیحت کن فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون نیستی تو بنعمت ربت یعنی بد لطف پروردگارت کاهن نیستی کاهن اون کسانی را میگویند که با جنات سرکار دارند و از غیب خبر میدهند غیب میدیدند که اخبار رسول الله درست میگفتن کاهن نه تو کاهن نیستی ولا مجنون دیوانه نیستی رسول الله دیوانه میگفتند اعوذ بالله وقتی که سخنان رسول الله مواعظ رسول الله در عقل آنها نمی گنجید میگفتند این دیوانه است امروز هم دشمنان مسیحیان یهودیان کسانی که بر علیه رسول الله کتاب نوشتند آنها هم منوسن الایاز بالله ایشون مبتلا بود به نوعی مریضی سر که احساس میکرد من پیامبرم اما ضمن این توهینها اعتراف میکنند که ایشون نبوغی داشت، صلاحیتی داشت، استعدادی داشت که هیچ که نداشت این اعتراف میکنند اما میگویند که به نوعی مرض روانی علی عیاض الله گرفتار بود الله از زواجل جواب میده که تو به لطف نعمت پروردگارت نه کاهنی نه مجنونی. در ادامه خدای از زواجل آیات را ترجمه میکنم، اما در ادام پروردگار میفرما اینها آیا از اقل خودشون کار نمیگیرند. آیا واقعا اقللا اینها میگن تو دیوانه فکر میکن و میگویند ببیندید قا... گاهی یک انسانی از کسی عصبانی میشه بهش میگه دیوانه ولی فکر بکنه میبینه اون او از من اقلل تره. اون از من بهتر میدونه. حال الله از زواجل همون کفار و مشرکین را دعوت میده به تعقل به فکر کردن واقعا کسی اگر دیوانه باشد چنین کتابی که همه شما آجزز هستید. چنین کتابی که مطالبش اینقدر نغز و زیبا هستن همیش استدلالی همیش منطق همیش مدرک همیش درست اخبار گذشته میگه درست از آب در میاد اخبار آینده و پیشگوی آینده هم درست از آب در میاد هرچی که میگه مطابقی انبیاء گذشته و کتاب های گزشتر هست قوانینی که میگه زوابیتی که میگه موعظه و نصیحتی که میکنه موعظه قرآن چقدر گزار است آیا این همه خوبی ها این همه زیبایی ها از زبان یک دیوانه صادر میشه چرا شما به عقل خودتون از عقل خودتون کار نمیگیرید همون هایی را میگه خدا که اونها به رسول الله این تهمت را میزدند لذا الله عز و جل در ادامه دفاع می کند از رسالت آن حضرت و کفار را به کفار را می عطاب می‌فرماید عتاب می‌فرماید الله می‌فرماید فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون نیستی تو به نعمت پروردگارت نا غیبگو هستی نه مجنون و دیوانه هستی ام یقولون شاعر اینم زاجر با نقل قول بلکه آنها می یعنی از اون ادول میکنن و چی می گویند می گوین شاعر هست نتربس و بهی ریب المنون ما انتظار می کشیم برای او حوادث زمان را منون مرگ را می گوین حادثه مرگ منتظر میشیم وقتی که اتفاق مرگ پیش بیاد وقتی که از این دنیا بره دیگه اون دفتر شعرش بسته میشه دیگه مردم را متاثر نمی کنه الله جواب میده قل تربسو فا اینی من المتربسین به آنان بگو شما منتظر باشید من هم با شما منتظر خواهم بود ببینیم که آینده چی میشه ببین قرآن همون طور که پیشگویی کرد آینده همون طور شد یا نشد اثری از شرک و از خرافات در اون بلاد باقی نمارد ام تأمرهم احلامهم به هادا این اعتراضاتی که به رسول الله کردن کاهن گفتن شاعر گفتند مجنون گفتن آیا واقعا عقلشون به این چیزونها رو میگه؟ واقعا اینها فکر کردند و میگن هیچیک از انها اقلاً به رسول الله نمی چسبت کسی اگر ذره اندکی اقل داشته باشد بل هم هم هم قوم طاغون یعنی انها قوم سرکشی هستند دلیل این گفتن سرکشی و تعصب انهاست ام یقولون تقولا یا اینکه انها میگویند تقووله تقوول میگویند حرف درست کردن سخن درست کردن تقوول اینه که یک سخنی کسی درست بکنه و به دیگری نسبت بدهد میگه فلانی گفته در حالی که خودش گفته حال اینجا تقوول به این معنی هست که یعنی اونها این حرف را پیغمبر خودش درست کرده و بعدا نسبت میده به خدا آیا آیا اینها اینطور میگویند بل لا علت الا اتسلقينك ان ها ایمان نمی آورن بلکه اینها ایمان نمی آورن خب شما که میگویید کاهن هست شاعر هست خب شما هم شاعر در میان شما هم کاهن شما بیایید سخنی مثل قرآن بیارید شما میگید الی الله دیوانه هست خب چرا شما نمیتونید شما که عاقلید شما که فهمیدید شما چرا لمیطی شما چرا عاجز هستید فلیاتوا به حدیث مثلی بیاورند سخنی مثل این قرآن از هر نظر قبلا عرض کردم اعجاز قرآن از سه جهت است از هر نظر از نظر فصاحت و بلاغت مثل قرآن بیارند از نظر اینکه مواعظش اینطور بلیغ باشد بیارند از نظر اینکه پیشگویی‌هاش درست باشد بیارند از نظر اینکه اخبار مازیاش اینطور دقیق باشد بیارند از نظر اینکه با تمام کتاب‌های آسمانی همخوانی داشته باشند بیارند از نظر استدلال از نظر قوانین از نظر ارزم تمام مطالب زیبایی که در قرآن هست از همه جهت بیارند مصر این فلیاتوا به حدیث مثله ان کانوا صادقین اگر اینها صادقند اگر اینها راست میگوین سخنی مصرین قرآن بیاورند اگر راست میگن در ادعای تکوول میگن از خود درست کردنا خب شما هم از خود درست کنید بیارید چرا شما نمیتونید ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون حال الله عز و جل شبهات رسالت را جواب داد در ادامه هم شبهات رسالت و هم شبهات توحید هستند. خداوند می فرمان آیا اینها آفریده شدن؟ یعنی این نمی اینها بی تفاوت باشند. باید ایمان بیاورند. آیا اینها آفریده شدن من غیر شئی بدون هیچی؟ یعنی من اجل اللاش بشیئی من العبادت او المجازات؟ اینا خلق شدن که نه عبادتی بکنن نه. مجازاتی؟ نه؟ ام هم الخالقون یعنی کہ خالق خود اینها هستند خودشون آفریدگارن خودشون میدونن چیکار بکنن یعنی چرا اینها احساس مسئولیت نمیکنند؟ ام خلق السماوات والارض یعنی که اینها آفریدن آسمان و زمین را نه هیچی که اینها نیست در وجود اینها جهل است بل لا یوقنون بلکه اینها یقین ندارند بدلیل جهل ام عندهم خزائن ربك یا اینکه نزد اینها خزانه های پروردگار است خزانه پروردگار مثل نبوت که بکی نبوت بدهند کی را پیغمبر بکنند بکی رزق بدهند نزد اینها است هم المسيطرون یا اینکه اینها داروغها یعنی نگهبان های اون خزائن هستند اونجا نقشی دارند تاثیری دارند اونجا کاری هستند یا اینکه اینها این اخبار را میگن این را میگن خودشون رفتن آسمان گوش کردند، ام لهم سلماون یستمیعون فی یا اینکه برای اینها نردبانهای هست، بلکانهای هست که استمیعون فی در اون استمامی کنند کلام خدا را، فالی آت مستمعهم بسلطان مبین اگر کسی میگه بله من شنیدم، شاید یک کسی از روی تعصب و دروغ بگه بله من رفتم اخبار آسمان هر شنیدم اون گوش کننده ایشون بیاید فلیعت مستمیع هم بیاورد چی بیاورد؟ بسلطان مبین استدلال جامع استدلال روشن چی شنیده؟ چی گفته شده؟ با دلیل و مدرک بیارد. امله البنات یا یعنی که برای خداوند دختر است ولکم البنون برای شما پسر است چون هم می گفتن فرستگان دختران خداستن خودشون دوست داشتن تو خونهشون دختر متولد نشه ام تسألهم اجرن یعنی دلیل انکار چیه ای پیغمبر از این دلایل کدوم دلیل هست ام تسألهم اجرن یعنی که شما از اینها موزد می حقوق می که فهم مغرم مسقلون اینها از توان او زیربار رفتند مغرم یعنی تاوان؟ مسقلو زیربار رفتند و شکست شدند به همین خاطر اینها ایمان نمی آوردند ام هم الغیب یا اینکه ان پیش انها غیب هست اخبار غیب دارند فهم یکتبون تبون درباره در باره آینده و مطالب آینده دارم مینویسند ام يريدون کیدا یا اینکه ان کی آنها اراده یک توطئه‌ای دارند الله می فرماید با خود اینها مکر میشند با خود انها توتعی میشه نقشی اجرا میشه بر علیه خودشان فالذین کفرو هم المکیدون کسانی که کفر کردند آنها هستند مکیدون یعنی تحت کید و تحت مکر خدا در می آیند خدا بد جوری حالشون را میگیرد گیرد حسابشون را می گیرد ام لهم اله غیر الله یا اینکه ان برای آنها معبودی هست غیر از خدا سبحان الله عما یشرکون الله پاک از آنهايي که چون اونها می گفتند معبود هست الله پاک از آم معبودانی که اونها شریک خدا می گرفتند لذا خدای از زوجل می فرمان نه معبود هم نیست انها انقدر از نظر ایمان و یقین دور هستند از حقیقت از فاصله دارن با واقعیت که و این ير من السما اگر تکی از آسمان را ببینن و این ير من السما تکی از آسمان را ببینن که ساقتن داره میفته خب آسمان میفته ليشو میکنه این غادر اینقدر اینا یقینشون خرابه است يقول مرکوم مركوم میگن این ابری هست متراکم سر به پر باران فکر نمیکنن که آسمان بیاد رویشون بیفته اینقدر اینها دل جمع هستن و مطمئن هستن لذا بعد از این سلسله زاجرها و سرزنشها خدای اززوجل به پیانبرش می فرمد فدرهم هم تسليه است و هم تقویف بگذارین ها را حتی یلاقو یوم هم الَّذِي فِيهِ مواجه بشند ملاقات بکنن با روزشان آن روزی که در آن روز يُسْعَقُون بیهوش کرده می حالت سعق بر می آید نفخه اول اول بیهوش می انسان بعد می میره یوم لا يغنی عنهم كيدهم شیعا اون روزی هست که تدبیر آنها مکر آنها توطئه آنها دف نمی کند از آنها هیچ چیزی ولا هم ینسرون و آنها یاری نمیشوند شود نه قهری هست و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ببین این سوره از سوره های مکی بود ابتدای مکه نازل شده هنوز مسلمانان هیچ قدرتی نداشتند، هیچ ساماندهی نداشتند، هیچ برنامه نداشتند، فقط دنبال یه جایی میگشتند که پناهگاهی بشه. اما خداوند اینجا کفار را بیم داد از عذاب آخرت. شاید بعضی بگن تا آخرت هنوز دوره، فاصله از دلها بشکنه. خدای تعالی میفرمند نه تنها اون عذاب نیست، برای این ظالمها، برای این مشرکها، علاوه از اون عذاب، عذاب دیگه هم هست، ایا در دنیا برایشون عذاب نه یامت چرا آمد چندین عذاب اشاره به همه اون ها و نه تنها به عذاب های دنیا هر چی که عذاب قبل از عذاب جهنم برایشون است همه مراد هستند مثلا قحط بدر قتل فتح مکه قبر حشر اینا همه عذاب هایی که پشت سر هم بودند و خواهند بود برای اهل مکه قهت آمد برایشون کشته شدند در بدر کشته شدند فتح مکه شد تارمار شدند در جنگ های دیگه کشته شدند بعد از اون تو قبر چی عذاب هایی بعد در پول پولیسرات همه اینها پس و این لیلزین ظلم و عذابندون ذالک برای کسانی که شرک کردند ظلم کردند عذابی هست غیر از این عذاب ولكن اکثرهم لا یعلمون اما اكثرش نمیدانند و اعتقادی هم به این عذاب ندارن در پایان خداوند تسلی میده پیامبرش تا وسبر لحکم ربیکا صبر کن برای حکم پروردگار. یعنی هر وقت خداوند حکم بکند و فیصله بکند برای اون فیصله صبر کن منتظر اون فیصله باش فإنك بأعيننا تزر نزار ما هستيد يعني خدات ترى حفاظات ميقولون توني جرّان نبّاش تفسير ابن كثير ميقولت اصبر على أعزهم بر أزيت الأزار إنها صبركن ولا تبالهم بروانكون بروان إنها نبّاش فإنك بمرء منا شما تحت نزار ما هستيد وتحت كلتنا والله يعصمك من الناس زير حفاظات ما شما شماره از مکری مردم افاظت می کند. پس وصبر ربك ربک برای فیصله و قزاوات پروردگار وردگار سبر کن فإنک بأعيننا ای پیام تو زیر نظر ما حستی. وسبح بحمد ربک حين تقوم و من اللیل فسبح و اذبار النجوم. می فرماید که شما تسبیح رب را بگو تسبیح همرا با حمد رب وقتی که بر می خیزی وقتی که بلند میشی وقتی که بلند میشی برای چی بلند میشی هر وقت بلند شدی تسبیح و حمد رب بگو بعضی گفتند حینت تقوم یعنی هر وقت بلند میشی مجلسی که با هم دیگه دارید از اون مجلس میشید؟ بلند میشید در حدیث شریف هم هست وقتی که چند نفر با هم مجلس دارند و بلند میشند بخانا سبحانك اللهم و بحمدک اشهدو الله اله الا انت استغفرك که و این هم حمد است و هم تصمیح است اینو بخونند خدای عز این خ... این ذکر این تسبیح و حمد را کفاره و مجلس میگرداند هرچی در اون مجلس کوتاهی ضعف بوده جبران میشه پس یک معنای حین تقوم وقتی که از مجلست برمیخیزی از جلست بلند میشی وقتی که بلند میشی تسبیح بگو حمد رب را بگو و بعضی, بعضی میگویند که حین تقوم یعنی وقتی بر نماز بلند میشی وقتی برای نماز بلند میشه وی اون وقت حمد و تسبیح پروردگار بگو انسان وقتی که برای نماز بلند میشه بخاند الحمدالله اکبر کبیرا الحمدلله حمد کسیرا الله بکرت و اصیلا این بخاند بره وضو بگیره بعد از وضو گرفتن ان عرض کنم که دعای وزو اشهد الله اله الا انت و واتوب الیک اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين انها را که که همین ها هم, هم حمد و هم تسبیحات انها را که بخانت الله تعالی وضویش را هم سبب کفاره می میگرداند نمازش را هم مقبول میگرداند اجر و پاداش بهش بهشت می میکند و بعضی دیگر میگویند که عین تقوم وقتی برای تحججت بلند میشی وقتی برای تحججت بلند میشی برای تحججت حضرت عباده روایت میکنه که رسول الله وقتی بلند میشدن میخواند لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير قينا محمد تسميه است روايه ثانيه هي أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها روات مكنه ان رسول الله مخنت اللهم رب رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك من تهدي إنك تهدي من تشاء الى صراط می میخوان همه اینها هم هستند همه اینها بزرگی و پاکی پروردگار هستند پس بعضی گفتند که تسبیح و حمد رب رب حین تقوم وقتی که استب بلند میشی از مجلس بعضی میگن وقتی برای نماز و وضو بلند میشی بعضی میگن وقتی برای تهجد بلند میشی سه قول عرض کردم و من اللیل و وهمچین در شب در شب تسبیح بگو، بهترین ذکر اونه که انسان وقت شب خدا را تنهایی یاد میکنند و ادبار نجوم و پشت سر ستاره ها، یعنی وقت ستاره ها رفتند غروب کردن ستاره ها که غروب میکنند؟ صبح صادق کی بشه؟ ستاره ها غروب میکنن. بعد از اون تسبیح و حمد بگو، میگویند که اشاره به درکت سنت صبح هست چون هم عرض کردم نماز هم سراپا تسبیح و حمد است یا الحمدلله است یا سبحان الله است لذا الله جل پیامبرش را میگه صبر کن و ذکر کن یه چیزی که ما از این آیات برداشت میکنیم ما که باشیم که برداشت کنیم علما و اسلاف ما برداشت کردند اون اینه که در وقت مصیبت و در وقت مشکلات انسان صبر کند ان شاء الله نصرت خدا می آید اما صبر تو خالی نه صبر همراه با ذکر خدا همراه با تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و استغفار هر که انسان بیشتر ذکر کند نماز بخاند که نماز هم ذکری زودتر نصرت پروردگار میاد اینجا در مقابل کفار ببینی خداوند به حبیبش میگه که شما صبر کن اما صبر خالی نمی و وسبح بحمد رب کهین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم یعنی در همه اوقات در همه ها شب روز بعد شب بعد غروب ستاره ها همه اشتسبیح و حمد پروردگار بگو بخوان. بنابراین این باعث میشه که زودتر نصرت الله متوجهت بشه بله این سوره مبارکه تور بود با این مطالب زیبا که درباره قیامت بود خاندیم